در زمان قدیم ارباب ثروتمند و خودخواهی بود که کسی را به حساب نمی آورد و به دهقان کمترین توجهی نداشت چون به نظر او روستاییان مردمان کثیفی بودند و شایستگی اونو نداشتند که با او صحبت کند. به همین دلیل به خدمتگذاران خود دستور داده بود از ورود اونها جلوگیری کنند یه روز دهقانان دور هم جمع شده بودند و درباره ارباب خودخواهی او صحبت می کردند یکی از اونا با غرور تمام گفت من اربابم را از نزدیک دیدم و در یکی از مزرعه ها با او روبرو شدم دهقان دیگه ای گفت همین دیروز اصر من از دیوار خونه اربابم رفتم اونو دیدم که داشت قهوه می نوشید دهقانی که از همین فقیرتر و بیچاره تر بود به اونا نزدیک شد و وقتی حرفاش رو شنید در حالی که لبخند می زد گفت چه حرفهای عجیبی می زنید البته که من اربابم را از نزدیک ندیدم ولی اگه تصمیم بگیرم میتونم با او حتی یه میز غذا بخورم همه اونا گفتند ممکن نیست تو نمیتونی با او غذا بخوری ارباب اگه ببینه که بهش نزدیک میشی از تو فاصله میگیره و اجازه نمیده که داخل خونش بشی دهقانان باز هم به صحبت و گفتگو پرداختند و سپس رو به دهقان فقیر کردند و فریاد زدند حرفای تو پوچه کسی باور نمیکنه. ولی من میگم که پوچ نیست. اگه تو تونستی با ارباب غذا بخوری ما قول میدیم که سه کیسه گندم و دوتا گاف گاو بهت بدیم ولی اگه تو نتونستی باش غذا بخوری اون وقت هر چه ما گفتیم باید انجام بدی دهقان فقیر گفت بسیار خب قبول میکنم بعد از جا برخواست و به طرف خونه ارباب حرکت کرد وقتی خدمتگزاران ارباب مشاهده کردند که دهقان فقیر داره نزدیک میشه در صدد بر که او را از اونجا دور کنند دهقان فریاد زد اجازه بدین یه پیغامی دارم که باید به اطلاع اربابم برسونم ارباب از این خبر یک خرد و با خودش گفت مثل اینکه دهقان نیامده تا چیزی از من بگیره بلکه حامل پیغامیه و خبر مهمی داره ممکنه پیغامش برای من مفید باشه بنابراین به خدمتگزاران دستور داد گفت بذارید داخل بشه خدمتگزاران اجازه دادند تا دهقان داخل بشه ارباب جلو اومد و ازش پرسید چه پیغامی داری چی میخواستی بگی دهقان نگاهی به خدمت گذارا کرد و گفت ارباب: من میخواستم تنها با شما صحبت کنم و در اینجا نباید کسی باشه. ارباب به هیجان اومد و با خودش فکر کرد یعنی چه اتفاقی رخ داده که این میخواد منو تنها ببینه. اما زود تمامی خدمت و کسانی که اونجا بودن مرخص کرد. فقط اون دو نفر تنها شدند و دهقان با زیرکی و مهارت اونم آهسته سوال کرد ارباب؟ ممکنه به من بگید یه قطعه طلا به اندازه یه سر اسب چقدر ارزش داره؟ ارباب پرسید چرا این سوال را از من می‌کنی؟ لابد منظوری داری. دهقان گفت: بله، منظوری دارم. چشم‌های ارباب از هم باز شد. دست‌هاش شروع کرد به لرزیدن. با خودش فکر کرد: حتما گنجی پیدا کرده بی علت نیست که این دهقان چنین سوالی از من میپرسه بنابراین ازش پرسید بگو ببینم چرا میخوای بدونی که یک قطعه طلا اندازه سر اسب چقدر ارزش داره؟ مگه خبری شنیدی؟ دهخان گفت شما که میل ندارید به سؤالم جواب بدید پس اجازه بدید برم و غذا بخورم چون خیلی گراست هستم. ارباب خودخواهیش رو فراموش کرد و دستهاش به شدت میلرزید. با خودش میگفت به هر ترتیبی که شده من این دهقان رو فریب میدم و اون طلا رو که پیدا کرده از شنگش در میارم. بعد گفت گوش کن دهقان برای چی میخوای بری؟ تو باید امروز پیش من بمونی تا با هم غذا بخوریم. بلافاصله فاصله خدمتگزارانش رو صدا زد و گفت فورا غذای ما رو روی میز بچینید و خوردنی و نوشیدنی هم برامون بیارید. خدمتگزاران غذا رو روی میز چیدند و نوشیدنی هم حاضر کردند ارباب مرتب به دهقان تعارف می‌کرد و میگفت بنوش هر چی می‌خوای بخور و سیر شو مباد و خجالت بکشی دهقان تندتند غذا میخورد و نوشیدنی می نوشید و از چیزی فروگذاری نمیکرد. ارباب صمیمانه ازش پذیرایی می‌کرد و بهترین غذا ها رو در اختیارش میگذاشت. بعد بهش گفت حالا تو باید اون قطعه طلای خودتو که به اندازه سر اسبه به من نشون بدی چون من بهتر میتونم ازش استفاده کنم و به عوضش یه مزه خوبی بهت میدم و یه سکه یه طلا بهت خواهم بخشید. دهقان گفت: نه ارباب من این قطعه طلا رو نمیتونم به شما نشون بدم. ارباب گفت: برای چی؟ دهقان جواب داد: برای اینکه چنین چیزی در اختیار من نیست. یعنی چی؟ پس چرا پرسیدی که چقدر ارزش داره؟ خب فقط میخواستم بدونم. ارباب عصبانی شد. و قیافش از شدت خشم برافروخته شد. پاهاش رو به زمین کوفت و فریاد زد: ای احمق، از اینجا خارج شو. دهقان جواب داد: ارباب ارجمندم، من اون اندازه که تو فکر میکنی احمق نیستم. البته مورد مسخره شما قرار گرفتم، ولی از همین شوخی دو تا گاو و سه تا کیسه گندم به دست آوردم. یه احمق نمیتونه چنین کاری بکنه و اینطوری استفاده ببره. و بیشتر از اون چیزی نگفت و از خونه ارباب خارج شد.